فصل انار بازیگران جلیل میرتبایی در نقش رضا محمد رزا فروتن امیر رضا، ماهچهر خلیلی، سهیلا سعادت، شقایق فراهانی، نوبخت، امید روحانی، کارگردان، تهیه کننده علی سرتیپی، موسیقی ماتن. علی امیدی نویسنده و کارگردان محسن شرفینی نیا. نده‌ی دوره قدیمی با دیوارهای کاهگلی پسر جوان با موتور کوچیکش وارد حیاط میشه موتور خاموش میکنه پسر معلوله درست نمیتونه راه بره بی بی سرتاپاش سیاه پوشیده ریش داره دنبال بی, بی میگه بی بی. از کنار یه راه رو رد میشه یه لحظه نیست. ببین. به هر درک می رسه یه لحظه توقف میکنه. ببین. در آب شده. دلنجه ی چوبی با باشش تا پنجره. بی بی؟ یکی از درا رو باز میکنه اصلا سلام علی در حال نازین است. به دنبال بیبی بی می‌گرده. وارد یه راه رو میشه و دوباره برمیگرده. نه نام موونه. چه قنا موونه بی بیبی اوه، موونه. نوال اونه رفته به هر این توالای نوالو میبینیدیدیبو نوالای یکی از درها رو باز میکنه از همون بیرون بوشی و برمیده هر او سلام وای بی بی داره ناموش میخونه داز داز سر وارد راه روی تاریک میشه دو طرف راه رو گلدونای گلی کنار دیوار چیده شده نه خاله شما اومدی چیشی میگی ای را میری آوره پسر در حالی که یک کاسه انار دستش از انتهای راه رو به سمت حیاط میاد. اتا کاسه انار دونقدر با بخور. <تصفيق> میشینه روی پله و قاشق انار رو دهنش می‌ذره. بیبی هنوز از اتاق بیرون نیومده. خانه دست. دستت. خانمت که خوردی؟ گیتاسه شو له دار، پسر کاسه عنا رو روی پله میذاره از جش بلند میشه. سمت اتاقی که بیبی توش حرکت میکنه نه نه, نه خون جوری، نمی‌تونید. پیتا سمبیوت کی پای بار, بار خوره. خودم مهرا. نه نه، نه, نه, نه یوی تو نباق خویم یا موس یاک با میشکنم مالی که نامی تویی کوچمه نامیا دیال به ما نیو نامی تو به نامی تویی بیش از این زمی سوار یاد گیر تا مده وقت تا رو اینا بده نمی‌تونی تا رو بکنی میمی می اونا داره این دویا نده آی می, می, می از همون بیرون یه کاسه یه شله زرد میگیره به سمت در خوروژی حرکت میکنه از درم همه تو درم خورو میبرم شوانه اما بایی درم پندر میدیدو شله زرد ببری به اونوی که درم درم کنه در رو باز میکنه یه در چوبی دولنگه قدیمی کلوندار پسر با کمی تلاش از در خارج میشه با دو دستش کاسه شل زرد و محکم نگه داشته کاسه رو روی سکوی کنار در قرار میده میخواد در رو ببنده که یه لحظه تعادلش رو از دست میده اما دوباره خودشو نگه میداره درو درو میبنده کاسه رو بر میداره و آرون از یه زیر گذره رد میشه یه پیرمرد که سوار دوچرخه است از کنارش رد میشه یه پسر موتور سوارم اونو میبینه و از کنارش عبور میکنه وارد یه کوچه میشه کاسارو رو محکم نگه داشته و سعی میکنه و رو توی راه رفتن حفظ کنه آفتاب شدیدی هم در حال تابیدنه یه دختر بچه که چادر گلدار سفید سرشه از کنارش میگذره به خیابون اصلی میرسه با قدم‌های تندتر از خیابون رد میشه و وارد بلوار میشه. نیست می تا ماشینا رد شن. به خونه میرسه. خونه انتهای یک کوچه بن بست. کاسه شل زرد و روی سکوی کنار در میذاره. در قهوه تیر است دولنگه کلوندار درست مثل در خونه بیبی بی در میزنه در خونه همسایه بقالی باز میشه یه دختر میاد بیرون دم در میسته با حرف میزنه <تصفيق> میدونم میمیتونم <تصفيق> پسر به دختر خیره میشه کاسه شل زرد و به جای دوست بیبی بیبی به دختر میده خودم <تصفيق> به فرم باشه باشه مرسی توی سلمونی عرضا خدا رحمت کنه بابا را که سلامتی باشه و اسمه عرزتی مو کنه عرضا ریلالله اینشاءالله ببهمه عرضا ازرائیل اسم پسر از پولی به آرائش کرده عرضیلله ببهمه قابل نره باشه ببهمه ببهمه خیلوه امنون مرمه داره سلامه داشه سلامه آقای برای سونه رضا از فلمونی میاد بیرون. هنوز لباسش سیاه پارشه. صورتش رو اصلاح کرده و موهاش رو توی زیرگذر. رضا یه شلوار قهوه‌ای پوشیده و بلوز استین بلند خاکستری قیمشه. کاسه شله زرد رو با دو دستش گرفته. وارد یه مغازه میشه. کاسه رو روی میز کنار ترازو میذاره. هایدی مادر سلام. سلام آقا رضا. اوجه. س... خدا بیامرزه بابا. گس درد نکنه. یه عیوم من میدون خونه بعد این کی میوهتون کیه چطور؟ گله در برمهبیومه رره برقونه اومد بون نمیید نه چند سال پیش رتن از این خونه ماله ها جبریشمی یا بود میدم خیااتی شدی حتما خیال نیستدم میار؟ <laughs> ای باز دیگر کی بو؟ دختر بو؟ بیده خب؟ خبتا مگه آجنه هسته ببینم که هسته بیبی همه پسرم چه کچه چنده؟ خدا هسته نیدی؟ همه دکنه یکی دوما حالا این دختر ساله مخالفتی بابا تمو خواهی کنی؟ یعنی تو آقل اون بیشینم که بابا مغالب با با بود با با من بره خودت میگم، سباب میکنی اگه بیبی رو تنها نداری تو پیری تنهایی بد دردیه تو واقع قرار داری که حالا حالا حالا نمیشه بله مرد و زن حالا مرد و همینه بگه ماشی من اون منم بی هیچ وقت تن تن. ادله همه قضیه. مه‌م بشو. شوام بی بشتو باش. مردم با موتورش دمه در مغازه نیسته سلام اجمه. سلام تو چه توری؟ سلام اصبا فرضیز. بفرمایید. خاصی نداشتم. همین تو رد می‌شدن گفت سلامی ارصا. همین جو دست شما درد نکنه رضا رو میبینه خدا بیا مرزه پدردار رزا جب برد نازنه چه میشه که قول شاعر میگه هر گل که بیشتر به چه من میده صفا گل چین روزگار امونش نمیده رضا ترک موتور و استوار پرویز نشسته کاسته تو دستش دست باگیره صفا یه درد پا من بیشتر دیگه راست کنیم دیگه ایم داری بیدر از ایم یاده، آزیمم من خوبی جود بزنه به <تصفيق> من میگه ایسی بازده ایسی تو عزیم اون رو نمیدونم آرزا ولی هم یه دونش هم موندن چطوری آج محمد تا زنی رو تیار خونه ی گیره داره <تصفيق> خدا شاید آرزا من اگه مجرد بودم تا الان میلیونر بودم اولی معمولیت اومدم یه از عاشق شد از زنگ گرفتم بعد اون هر معمولیت لنابداری که بهم به میخور زنم مخالفت میشه نمیزاش برم معمولیت میگفتو باید پیش من بمونی من از تیش شر مجبور شدم که بمونم ای بابا درد مطور میسته؟ موازه خواهد باش. رضا کاسر رو به پرویز میده تا پیاته بیا اینا کاسر الان هم نزدیک با آدو شستگیمه آده بساد میدارم بما ایده ازدو بازن نمیگیدیم بقیده خیلی با خیلی منون کنه رضا با پرویز دست میده و میره تو که پدرتم مخالف بوده رزا چی میگی زم میخه پرویز متجب از حرف رضا رضا دم در همون خونه ای که اون روز دختر ازش اومد بیرون ایستده کاسه شل زرد رو روی سکرو گذاشته و از لایه در داره خونه دختر رو دید میزنه دوست بیبی بارد کوچه میشه. بیبی معصومه. رزا خودشو جمع جور میکنه. بیبی معصومه رو یه سکوی کنر خونش میشید. بیبی معصومه سلام. سلامون علیکم. خوده بودی؟ این قرامت دارده دارد. آن رفتم بازارمانده شدم. خسته شدم حالا کمارده دارد. این که که که شده دارد برمونم. درسته شما دارد نکنیتی دارد. این کنیتی هل خواهی چی نه؟ هیش به توش نیست میخونه مخواهی ایجا رو دن گفتم این همیت نزید تو هست که ها دشواله دن اگه اوزو ببین بیکاری تو دست پای درد و حال نداریو. اینا اینا دگه وخزی بری کنی. کار کنی؟ وخزی بری. بری خونه اینا پیدا کنی خودو قبول دارد و خودو پی ادم بیا مرزی خیلی بگید باشه داد نکرده ای بابا قرب و... تو نمیای تو نمیای ای بابا سلامت رضا شل زردو بی بی مصطفی نمی میره شب شده رضا کاسه به دست وارد خونه میشه بی زلا سلام یعنی اون عادی آینه که به دیوار زده شده نيسته و خودشو نگاه میکنه بیبی توی آشپزخونه. است بخور من روی زمین پهنه بیبی ننه در را بیبی, اور توش بیبی، ای که یا دو تایی سازم ویزم هم تایی بیمه هزومه تیه کنه هزمان به بهش ای با آجه هی برو به کنه نگفتم نگفتم بیبرید چرا را میگم صفتالا کجا رفته ای میره و میاب چشم روشم رزا تا کوکو کمی سبزی یه تیکه نون توی بشقاب میذاره هنو کفانه بابات خوش نشده تو در این که کسوره ها رو سیما کنی باچاقو یه ترپچه قرمز رو از وسط نصف میکنه و توی بشقاب قرار میده بیوی بی. تو بیزا و تو هم من بود. رضا باباشخه به از اتاق میاد بیرون. پاش میکنه. باید بی درد نه نمیدونه کوله کام گه. اون لا قامو. Dampisho pash mikone. حالا بی بی هستش بیرون میاد. توی کوچه موتور رضا پارکه. رضا عینک آفتابی به چشمشه. پارچه سیاه را از بالای در خونه برمی‌داره. عکس کاغذی پدرش رو از پارچه جدا می‌کنه. می‌بوسته. روی سکوی کنار خونه قرار میده. بقیه پارچه رو از دیوار می‌کشه و جدا می‌کنه. عکس رو به همراه پارچه به خونه میده. رزا سواره موتور، هندسپری توی گوشش از کوچه های تنگ و باری که فقط موتور میتونه ردشه به آرومی حرکت میکنه گاهی پاشو به زمین میزنه و تعادل موتور حفظ میکنه به خیابون اصیل میرسه نگاهی به ماشین میندازه و عرض خیابونو رد میکنه توی بلوار کمی میسته وقتی خیالش راحت شد که ماشینی نیست باز هم عرض خیابون رد میکنه و از جدول که با خاک راه برای عبور دوچرخه و موتورسیکلت درست شده رد میشه به خونه ای می میرسه که قبلا دختر اونجا دیده بود خونه سمت راستی بیبی مصومه موتور رو خاموش میکنه نگاهی به خونه میندازه از موتور پیاده میشه هند از گوشش در میاره عینک آفتابیش رو برمیداره به سمت در خونه حرکت میکنه سویچ روی موتور جامون رزا برمیگرده سویچو بر میداره و سمت خونه میره در نیمه بازه رضا نگاهی توی حیات خونه میندازه در رو باز میکنه آروم و آهسته وارد حیات خونه میشه پردهای مقابل رزااست رضا حرکت میکنه پرده رو کنار میزنه یه گروه فیلم در حال کاره بله، ساکه دوستان ساکه صدا رفت، دوربین، رفت سکانس دوازده، پلانه پنج، برداشت ها حرکت همه شب اول کنید فرسانه عاشق شده چیم شدی؟ بشمارم مگه چند تاست؟ واق مرچیتی آشرا شدی که پس وقتی قرار تو باید وقتی آقا اون داره؟ آقا. آقا. خیلی سمت آقا این داره دیرایی حالم صدا صدا صدا سکانس دروازه پلان 8 دوربین رفت رضا با مرد وارد حیات میشه. حرکت همون شب اول خونه ای فرزانه عاشقت شدی عاشق چیم شدی دشمونم مگه چند تاست اوه. نه جدی عاشق چیم شدی که تو شکستی؟ عاشق پستدنه کت با چی بوم تو قادره آقا این همه بوم چیکار تو من چیکار میکنی؟ آقا یه بوم آه... اگه اگه داری می گیر این همه بوم بر چی جا بیانه بیا نه بیان زبا رضا ای از حیاط داره نگاه می‌کنه. آقا حله؟ آقا که این داره میگیره تو حله. بگیریم این دفعه نه. آقا ساکت کم چی رضا لبخند میزنه. مشکل نیست آره صدا بله ساکه. صدا رب. دوربین. بین حرکت همون شب اول خونه فرزانه آشرت شدن آشرت چیم شدی؟ بشمونم مگه چند هست؟ اوه نه جدی آشرت چیم شدی که تو بشکستی؟ آشرت پس دادم دیگه یادت وقتی قرارش به کتاب آن بیرهش به این چقدر شرطش گذاشتین کذاشتی؟ یادت وقتی بهت گل دادم جده خودم دادشون به فرزانه یادت؟ خب مردی که بعد از رفتن زنش عهد میبندی که زنی تو زنگیش راه نده که به یه زن دیگه روزه سرخ نمیده داری مریم اشت خیلی تصالبه وقتی پیش بید دیگه اومده راقت محلوم است کدومت خسارتی کارت آقا دوری رود هست با همینه آه... شما یه رو آقا خیلی از پرلاکه بالا چه وایسی میخوایم بگیریم بعد حالا شعرها بز تو توی راه تو حرکت دی... همه سر جاهاشون همه آماده اون ویروسو بیرون ویرونو ساکتش اون موچو کیه کی ویرونو ساکتش کنه خدا بره دیگه آی راهی میخواست نگه رو بگم بعد شعرو تو راهرو بدیم بله آماده دیالوگ همین هیچ کدوم میگه بله فرمان pues سکوت آماده برو. در بده. اجازهشون اون بیرون ساکت. رابطه. آقا ببینین. صدا. ساکت. صدا. عجله. صدا رابطه. دوربین. رابطه. 961. حرکت. میخواست نگه. عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زن حالا بذار برات یه چای داغ داغ بریزم. هیچی مثل سوبونه خوردنی با تو نمیشه. هیچ. صبر کنیم تا تن نازم بیاد. برای چی صبر کنیم تا تن ناز بیاد؟ برای چی صبر کنیم یکی دیگه بیاد تنهاییمون رو به هم بریزه؟ آخه روانی من نمیتونم. من نمیتونم میتونم. بازیگر زن به دست آقا کات بده. خاشو من میتونم خانم آخه شما اصلا ببینید چه با من دیالوگ میگین شما حالا به یکی از بچه راننده اینا بگیم بیاد من دیالوگ بگه خیلی بهتر میگه با میگه اصلا نذاشتم من دیالوگم بگم که من کجا نذاشتم ببین چند روزه داریم بازی سر من در میاری ده. حالا بشینید حالا بشینید خداش نه خوب شما خوبه خوبه دیدین یا بدوره به در و دیوار میگه یا میره اون پش قدم میزنه یا با موبایل حرف میزنه من نمیدونم چه قصدی خلاصه ی سرعتی دل یه ماشین بذار خانم ببره هتل خانم ببین اگه زندگیمو خراب کردی نمیذارم وازیمو خراب کنی خاله خاله آروم اینو آروم. باش حالا آروم بشی آقای ماشین بگیشون بفرمایید توتلی سرعتی بکنی شما شوخی مردی به کارگردان آب میده آقای روحانه ببخشتا من اومدم دیالگم رو اینجا بخونم اصلا اجازه نهتون محلت ندارد شرکت که دیالگم شده آقای فرزی بعدم اونجا باز دوباره من اومدم قشنگ دیالگم رو دارم میگم من شماهایی به من میگی با سوالی بیشتر من نمیدونم واقعا با چه حس سوالی برد آقای فرزی محقیت درد کن من مادرم مرده به خاطر فین و من یک روز تشید صافونه هر روز رو اسامو رژ میگه وقت نداریم چون باید تخضیه کنی من چیکار کنم که شما بیایید من تو تلفن موقعیتو برای شما کی عهد دادم گفتم با ایشون مسئلی ندارید دارید گفتید خیر نذارن ندارم, ندارم. بفهمید, بفهمید. بفهم بفهمید چی کار تا آقا اول بخورید شما حسابتون عوض میشه خانوم وقت فلسطین آژانس خودتونم ساعت 12 اینجاست الانم ساعت 11 ربع هایاستران چه قراره با نهار هشت حالا کی نهار میخوره هفت سهران گفتی؟ یازده رو وقتی کمی خیلی خود سعادت دست داشتید خانم سعادت گریمور خانم سعادت رو گریم میکنه <تصف> <تصف> کارگردان کلافه قدم میزنه خانم سعادت از کنار رضا رد میشه بله. آقا. چه فرمایید آقا من حاضرام. این کلاژی که خیلی تابلوه. همین. گروه گرین اینو درست کنن. همین یه دونه. خب یه خورده جلوتر. بله. آقا دوربین رو می‌بریم بالاخونه. سری. آقا دوربین رو می‌بریم صفای بالاخونه. بفر. آقا بفرمایید. آقا بشینن اینجا رو. بچهای صحنه بچه صحنه بالا رو آماده کنن. آقا دوربین بیاد پایین. دوربین بیاد پایین آیلول. یه صفای آیلول. بله. سعادت روی سندلی پشت میز نشسته گروه دور آماده ای؟ تاکسی سکوت خاموش دوستان <pirus> بازیگر معد روی صندلی مقابل سعادت میشنه سعادت اینکی به چشمش میزنه همه چیه آمادی هست؟ آماده ایم؟ بله آماده صدا؟ بله ساکل و صدا رفت شما؟ هم. اگه میشه تو آشباس میباشیم پشتنه خلوط کنیم پشتنه رو خلوط, خلوط کنیم بچه ها صدا میگرفتن صدا ها کتابوس خواهد آقا چقدر صدا سیگه بچه ها پشتنه حرف نزنن, نزنن. نفسیم دوربین ساکه صدا رفت چارده رفت حرکت ببخش اینقدر سندلی صاف کنی خود کارت از اول خانم سه اگر مکس فاصله برد بله چشم رو بخش لطفا با ماکس. صدا بله ساکت صدا رفت یک دو دوربین رفت حرکت حرکت ها بوس خواهد جوره هندست ببخش اینجا تکرار میکنی کارت از اول کاد نادین کاد نادین بریم عجله کنین دست یار از پایین سندلی متنو برای سعادت میم صدا بله ساکه مشکلی است نه خوب نه نه دوربین صدا رفت 1410 حرکات حرکت تابوس خواهد جل هندستون کشن ما که همخونه ای مو تابوس هم نمیخویم که ای وقت ادوامون میشه <تصفح> شما که باید هم بکشید بابا این خوشمزه است قفی بازیگر مرد و سعادت سمت کارگردان میاد روزا درویشی درست درویشی ایشون بگم چه نه بذار بگیرا بچا بچینید خوب دقت کن چی میگم آقا کن آقا از این در نظر ما رو بفهم دقت کن این دو تا رو به دقت همین وان رو بگی صدای که بعد خیلی خیلی متاسف خلاص. خلاص. خوب رو اون دوتا که تست کنی تست مردی روی صندلی در حال تست دادنه. رضا نگاه میکنه مرد ازش می‌خواد که بره. خاالمه سعادت رو می بینید سلام سلام؟ شدا برید شما برای مشکل فردا برده بودی؟ آره دست درد نکنید به من که نرسید. چقدر عوض کرد من گیریممو پاک کردم. اما شما خیلی بیشتر عوض شدی. شما دیروز ریش نداشتی. یه لذه بچه ها ببخشی خسته نباشه خونم سادت این روز خورد به هم بیخته است اگر اشکال نداره آقای فرزین ماشین دارن همرایشون تشریف ببرین آره ولی فکر نمی کنم امیر مسیر هتل بلد باشه کنه بوده هتل دال اون با امیده یه ماشین شاسی بلند مشکی به سمت هتل در حال حرکته بازیگر مرد که اسمش امیر رضا است پشت فرمون نشسته. سعادت صندلی جلو و رضا صندلی عقبه. او رضا، چرا انقدر ساکتی؟ چند سالته؟ ندته؟ رضا، نکرده. رضا لیسانسه چی داری؟ کامپیتر ازنان داری برای فوق میکنم وزی به قاطعه فوق نه. پده ندونستم خون بگونم وزی کاری نوی ترتیل داشت؟ کامل نه ولی مادر آقای کارگردان فوت شده دو سه روز رفته که برگرد بعدم که برگردن این بدبختی که خیلی فوق برات نه سرم گاه به کلس حجم و زمان و تاعت می رو کلس تاعتم می روی؟ الان من نمی یونسکو کار می کنی جلال کیه؟ آله بس ساعتی تو هم داری رضا عینک آفتابی زده سوار موتور مقابل خوناست خوشحال سمت هتل حرکت میکنه کتوروشهی پارک میکنه. وارد هتل میشه. سمت پذیرش میاد. توی حیاط هتل چندتا خانم کنار سعادت و امیر رزا ایستادن و عکس میگیرن. رضا اونارو میبینه. میخنده. <تصفح> <تصفح> <تصفح> تامط صندلی میره که بشینه اما نشینه. امیر رضا رو میبینه. سلام. قربان رضا. سلام. سلام. اینجا چیکار می‌کنی؟ من الان باید سر کلاس بشی. گله دارید؟ ما که مرتضی ماجری. سلام سلام. خسته نشی. مصم محاسدی پس. خبری عمر. بیچاره‌ام کردن. چرا؟ ریختن بهم مثلا همه چی رو ریختن بهم. خیلی خوب ما آرزویمه سر کلاس سره. از من خواسته که ما بریم کلاس ساعت. بریم میچ. خیلی خوبه. آره خسته نیستین شما؟ خوشحال میشین نه؟ خیلی خوب. خیلی خوب. منم خب. خب. خب. لباس سفارش می کنم. مرسی. میگن یاغن؟ یه چیز از آدم باهوش منع میام. توی کلاس یه دختر یه ویلچر به همراه دو خانم دیگه یه پسر بچه و دو آقا در حال نقاشی کردن همشون معلولن سال. معلول جسمی. سلام، سلام. خیلی خوشم اومد. ولی منم دلم می خواد می سلام. خوب است به ما گفتن که اینجا که قرار تاعت کار کنه. ما روزه زوجمون ما تاعت روزه فرد و چهار نقاشی می کار کنیم به زن سمت دختری که روی بوم نقاشی می کشه می دستیار قدم می و دور تا دور کلاس رو برانداز می معلم از توی یه بخشه که پر از اناره ی انار رو روی چهار پایه خرار میده بار. که اینجا دره در بکشت نمی کجا میشه استفاده کرد مم. شما هر فکر هر <متنق> آره می کنم من پیشمال باشیم میدهم من بگیرم پیشمال باشیم نبیم با با با باید که من دست باشه میگه بابا گوشی زنگ. توی ماشین امیر رزا پشت فرمون سعادت صندلی جلو رضا به همراه دختری که روی بوم نقاشی میکشی سندلی عقب نشستن رزا اناری دستشه بابا رزا چیکام میکنی باید انار؟ بوستش نازو که بابا زباش رزا چه خیلی <تصفيق> خشه خشه خب بله معلومه هر چیزی تو پسرش خوبه واقعا آقا باک آقا گوشه که یه جیدی خیلی خوبشنان در شبوغش میکنیم باباشه الان اگه دور داشته باشه دیگه نمیتونه ببینه. دختر سرشو میاره پایی بسیده منشیم بابا سعودتی میزه های که الان الان فرصه طلب که توی هیرا بیریم همین در دو میدنید هم بله بیمه یا اپورتونیتی مه؟ huh? چی چونیتی؟ اپورتونیتی یای فرشت تلا یای ایفنون با یایی بیتونی هرمو کهیل او حالا آقا لازن نمی قادم قشنی زبون میکنه آخه مکنی میتونستن اونجا فرصت طلب کنن قبولم ولی من فرصت رو ببود رو بودم شما بردن فرصت ایتفار کنشتنه نمیداریم بابا چی میدین شما داتا؟ آفورشانیس چیه بابا شما آشدیم آخه چه فایده دادم بزرگ ترامون فقط دلیل میارن که عشقی به دل نیست شما دو تا به هم کمک کنین به سالن باشید یک جون کم وقت دارید به خدا همی بابا همین الان که بابام میدید نمی دونید دیگه نمیذارن هم کلاس ورم برن آقا درست رسون آیدنه بعد این منم باچ خوردن نیست رزا جمعه هفته دیگه میمینوده بالا نه که درست دارم میبینم کلاس دونه تو بیده اینکه میدیم آبا بای چه نم رزا این خانمم شما حساب میکنین؟. <تصفيق> بمای ست پیاده میشه تک یهگاه صندلی جلو رو می خوابید. <تصفيق> بفرمایید سر خانم. دست <تصفيق> در ببخشید. ببخشید ببشید کی مزه؟ بله. در فرمایی دستیدون درد یکس دست از ما تو تو میگیرم آره آره درم ببن بسید یکس با من میگیرین لطفا خوش هر میشون امیر رزا از روی ماشین از رضا و دختر و سعادت با دوربین اکس میگیره یکی دیگه یکی دیگه خیلی دستی شما درد نکنه خیلی مزاهمه دون شد خوش خوش رزا, رزا دختر رو همراهی میکنه خبون که برمیان برمیان برمیان نه اخی میخواستم بابا برسه وقت خیلی دیگه برسه موسیقی الو همین از ایکی می باشه میمیم خیلی چی شد؟ ماشین رو میخوایم ببرن سر بیس بریم این فالود فروشیه ماشین رو میخوایم خب میخوای تو برو ماشین بده من با رضا میام اونجا میبینم ها؟ از من کتاب دارم دوربین تو میگه من با عکس بگیرم بله حتما مرسی بیا. اه آنانشون یادشون نره <تصفح> اه آخه تو ساعت تو انی رضا انا رو به سعادت میده رضا از دختر جدا میشه و سمت سعادت میاد امیر رزا میره بازی جعفر آقا رو از جعفر آقا؟ آه ها مقازاشون لوکیشن فیلم برداریمون بود بعدش هم که دیگه شدی مشتریش ما خودتا که بازده <تصفح> آدم خوش سروبتیه نه آره. همچه های پرابلوی سواست همچه را؟ به موالای این دستی که هم همچه این هم میخواستم ازت هم چیه؟ خونه دیدم نیست. در یه باز باز فهمینا رفته بهت زن دارم کلی باید اومد کردن برای مرمه بریم ده خیلی بازم باشده فعادت اکسی فردا ما دلخونی داریم امروز هم که ماشین نداریم خب میگفتی بی بی حالی بازم رو دورتر میشه ببین میتای میشناسش کنی؟ باشا. آ آقا بابک اسم تو فیلم میشه. اسمش امیر امیررضاست. ورده یه بازارچه میشن. چه خوشگل اینجا. شال و مانتو و لباسای رنگی از سقف بازارچه آویزونه. ورده یه مغازه میشن. این قشنگه نگاه آقا توی کوچه سعادت از بیوارا عکس میگیره آقا رزا آره این فمت کافینت هست لپتاپ هم خراب شده آقا کافینت بی بی پونسر دوسته میگم یه موقع به حضرت نگذره یعنی چه یعنی لیسانس و فوق لیسانس و ساعت و درامت خوب و که میخوای بگیری دیگه چی؟ آره چشم هم <تصفيق> نه من چشم شروع نیست محل قدیمیه دیوارها آجریه و خیلی بلند کوچه باریکه ماشینی با سرعت رد میشه رزا به شیشه عقب ماشین میزنه و دنبال ماشین میدوه سعادت به عکسی که با دوربین گرفته نگاه میکنه. وارد فالوده فروشی میشن. آقا رضا مواظب باش. دو تا میز فلزی گوشه ای چیده شده. فریزا سانتا آقا جعفر میره گوشه دیوار قایم میشه. سلام آقا جعفر سلام، سلام سعادت. خسته نمشه. ممنون. سعادت عکس می‌گیره. سلام، سلام. سلام. امیررضا هم رسید. امیررضا رضا رو می‌بینه. رضا اشرمیده که هیچی نگه. سلام، مخلص آقا جعفر. سلام. خسته نباشید. شده؟ آقا چه رابطه‌ای باشی؟ ما داستان داریم. خیلی زرنگی خیلی زرنگ است دست شما دردن کنی حاجی آقا باقا بزرگ سار هست سار هم اشت به چون حاجی آقا همیشه مخالفت هم میکنه بکشه اینشون هم همیشه دستش خواهر میشه بله میکنه چی از چیچی به رزی میگیرم ماغوت خور گو امیر رزا روی یه سندلی نیشه من سادر شاشی چی مخورم من ماغوت مخورم مرسی. مرسی. مرسی چی گرفتی این آقای که الان گرفتم. ه قبلیاش نگاه امیرزا رو نگاه میکنی ببین کارت بندی ها رو جاد خالی بود وای خوبه. خوبه ای داده بیداد. داد وای وای چی کار بله در خدا آره پدر بزرگ سارا میره. تمام کیف هم شد انا شنیدی میگه انا تو کیف بته که شانس میره. خیلی مزه واقعا پدر نثامش میکنه. نه دم تو اردو بذار. مرسی مامان. نه من مچکه من. به سوپا چشمش پدر بزرگ سارا رو تغییر میکنه. با خیال راحت میاد پیش انی رزا با سعادت او من اینو میاد عوض میکن تو خدا ببخشید آخو رزا عوض نمی کنه که عزیز سیفیل نداشت شما هرچی دلت خواست بخواست سعادت شال سفید با گلاه مشکی که خریده بود از انا رو توی کیفش قرمز شده رزا شال رو توی دستش برانداز میکنه بج بعد از تاکل پورتی خب زیر نمی نوباری بعد ایما با... باش ولی عوض نمی کنم. اون بابا مرسی حالا کرده خیلو خوب ممنون دیداری خود توز کار گردنی آمدن <تصفح> خیلی ولی این لذار خیلی به چه همینطوره چی فکرمی ها جی خانمش قدر نیبه چرا نمیدن دو این دوار یکی پا پیش بیدن نمیدن بابا بید برید دیگرد بشنو برید بشنو آو اصلا اگر شما دفالت کردین ها جمع دفالت درست شما باید شما بلاخره بخیلتی یکم معیده ان لبشم همه رضا هوا تاریک شده میلادو رضا توی حیاط روی پله نشسته نه بابا شد منم میخواستم چک کنم سهیلا سعادت میاد رو به روش روی پله میشینه سهیلا انقدر محترمان و مؤدبانه بهش حرف میزنه با بیبی از من کنه آره هوا هم بهش خوردون ها روزون بود یک کاری میتونستون برش بکنی چیکار میتونین برش بکنی نکنی اونو نه اوی نرسیده ها باشه این صدا شد بسید چیدم هنار که دیگر الاناس فکر میکنم ولی اینا نرسیده هم میدونی فرق هنار و ترشه از کجا میفهمنی؟ بله از کجا؟ های هنار اگه گرد باشه ترشه اگه صاف باشه شیرینه خودایش هنار خوری ها یاد گرفتم اول تلوک آبلنبو از این بچیشی کموها بودی خیلی کنم محبا اینجا بزردی رستوران. با هم تو حیات قدم میزن ما کافیتریای آقا رزا آره هم هم دوستش دارن مهربونه میومدن برا آره آه ببین پیدا کردن خوش گلش سهیلا دو تا الار میچینه یکی شده امیر رزا میدین نیفتر درست بیا درست داد. ببینی سویده ها هم تو فکر میکنی یه دختر ساله میتونه با رزا زندگی کنه آره چرا نه میتونه بهش وفادار بمونه از کجا معلوم آقا رزا با مون <تصفح> <تصفح> زنی تو خالا آقا رزا آقا دیر شد ما داریم میریم رضا میات سمتش قربانت ممنون اما ما باید بریم علی تو وجدی حالا یا شعبدی باشه رضا همراهیشون میکنه بی بی دیگه میگونه من باید میام حالا با سلامو گونه حالا که دختر سالم پیدا کردم ای با اونه میاره نمیره خواستگاری حالا اگه رفت خواستگاری دختر رو بهت دادم تو که دلت پیش ساراست نمیدن هی میگه نمیدن حالا شادم دادم داده از کجا معلوم امخشی اصلا نمیره نمیره شما بازی میشه من میتنه زمین اما من به دلم شده هم میره همونها راضی میشن هم شما ازدواج میکنی آره اومخ چی؟ ها؟ به قلی نیما مبتلا و چیز شاید روز روزا خیلی ناغلاوی <تصح> خیلی خیلی خوب ما رفتیم دیگه تو هم نه یا ما میریم خدا خدا حافظ خدا حافظ آمده <تصح> فردا برای دنبال بی بی راستی آه. با چی میری با آدان تی هتل اتاق نوبخت در درو باز میکنی سویلا وارد میشه <تصفيق> خرملی نوبخت به ما یه امضا دارم چای سفارش میدم میخوید بله الو ببخشید اگه میشه یه چای دیگه اضافه کنی؟ متشکره فردا برو بله بله هم معتاقه دویست دو ببین ببین گفت کن پاشو بریم پایین حسن پا با زیر کنید چونه من؟ چونه من؟ بین آقا خیلی خوب آمادهش سر میز پایین تو حیاط بله الان میام خدمت خواهیش کنید چیکامی کنیدی از صفت دوتا شکرام کردام گریه کردی حسن گریه چیه از تو فقط هرس چی؟ خب دیگه خیلی تحمل کردم این صدام در نیاد ولی خب کاسه صبر آدم یه حدی داره دیگه یه امدازه داره ببخشید وداد داریم به این کارتو <تصفح> <تصفح> <تصفح> یه عمر همه بلا رو سر مردم پیاده کردیم حالا جوجه و سرم هم سر من بیاده کنه دیدی ببین یه جور تطویه دیگه تا داری داریم با آره، تخصیل این کارگردان از تو با اون مقابله هم گذاشت آره، اونم از زرنگی شه همش فکر فروش فیلم شه حالا فکر دوباره ما رو مقابله هم میذاره به اناس چه فروشی بکنه آزده خب من ناراضی نیستم خواله، بلخور، دیداره خوبه خوبه خوبه دیداره یاره پاشو، پاشو بریم پایین، بله ره باشم بریم بریم بیا دیگه اله خب با از اتاق میام بیرون شما چی کار کردیم هیچ موام تو شرک چرک نزدیم و بعد هم رفتون کنی این پسر همه هم معلوله معلوله چیه بابا کاش میامده توی راه رو قدم میزنم حالا خونش رفتن را وقتی چگاه؟ وقتی می میمیلامونو چک کردی اینترنت بوده کیا بودی؟ منو آم. امیر رضا و... امیر رضا حالا آنم بومه خیلی خوب اصلا نمیخواد اسمشو بیاری حالا با هم میخوره اسمش میاد. با خود رو میگه خوردم با هم میخوره به من چه؟ <تصفح> یه لحظه نیستم ببطر برش هستم اسم میگذی؟ چه آدم عوضی هستی؟ <تصفيق> میرفتی مهمونی بهش نمیگفتی کجا میدی؟ کجا میار؟ چقدر گفتم نخون، نزن؟ فاهم این کارت انداختیش دو؟ حالا چشه دنبالش من میگم اسمش که میاد حالم هم میخورد وقتی میگم من چشم هنوز دنبالشه؟ خدا از دلت بشه. پایش خنک شده نه هر دور یه نیمکت چوبی مقابله هم میشینه نیدونی چرا حال دفش بهم به میخوره ام. چون باطنش خرابه آره یه آره شعری بود خدا بیا مورد گفت چرا به جای و وفا و محبت به اون رو خیزیم باداده آراره میدنم خب خدا جوابه شو چی دار؟ چی دار؟ میگه خب یکی هم دارم محبت داره محبت داره وفا داره اما روح نداره خوب. این همین رزاست دیگه خدا میگه چرا سمت این نمیاد این مگه چشه اگر راست میگه بیا حی و حاضر مال تو مناجات هم نمیخواد همین معلومه همچنین اگه معلوله انگاه تمام دنیا سالمن همین یکی معلوله این از همه سالمتره به خود ببین خیلی حرف میزنی <تصفيق> خب مگه آدم دلش یه شوهر نمیخواد که از همه جرد خیالش راحت باشه چرا بالا خب یکی که زیاد مردم نگاش نکنن تو چش نباشه دقیقا خب بگه خب این خود جنسه خیال راحت زندگی تو میکنی آرامش داری دلخوره نداری دقیقا دیگه نقدم بامزن این چیزای بامزه این میگه بینی انقدر دقیق داره مم. از این که تو یه حوارانگی عبرو تو عوض کنی متوجه میشه خفتگره میکنی نه خود هست نصر داد میزنه، نه دعوا و را میندازه. حالا اینا. آدم جرئت نمی‌کنه یک کلمه باشون حرف بزنه. این میم چه قره موقتام که را دی دیگه واقعیلاست. این چی میگه؟ میگه من ری... من ریشه مهر محبت من اتان... من من رشته من... محبت تو پاره میکنم. میکنم شاید گرفت خورد میکنم. به تو نزدیکتر شوم من ندام چه سوری دارینه که بلد نیسته بگی ببین ما خودمون به خودمون ره نمی من اینو قبول دارم اصولا ما زنها انتخاباتمون قلط اشتباه انتخاب می کنیم اون وقت اسم ازدواج و عشق و چه خراب می آره ولی خب مردم همینه یه راهبه می تو خونه بشه مریمون. بخوام مریمورو رو میخوام تو خونه کلیفتی فتی بکنه. قرمه سبزی درست بکنه. آقا هم پاشو بندسه باد بکنه. و یه روزه سالگرد ازدواجمون یادش بریم. میدونم. یه دست کل میفرسته واسه ادم. آفرین. به خدا یه لیوان یه لیوان، یه لیوان گوشه میزد رو. آدا تو اتاق مادر صدا میکنه. یه لیوان آلوزه دست من. یه با سینی تارف کن جلو. بله میدونم. خب حالا تو به من بگو کی معلوله اون یا اینا <تصفيق> آقا مالا اعتقده بیسه ده گارسل چای و کیک شکلاتی رو میز میسره مرسی آقا ملکه گفتم شکلاتی نمیخوام رف اب ندارم سهیلا چای میگذارم اصلا از همه چه خسته شده از زندگی این کارم همه چی خسته شد از کارت خسته شد از آره بازیگری خسته شد آره خیلی به خدا چه کاریه موقعی که خوشحالی میگم بعد گریه کنیم موقعی که حوصله نداری افسرده و ناراحتی میگم باید قاقا بخندی موقعی که عاشق نقش فارغ ها رو بازی کنی موقعی که فارقی و نقش ها رو بازی کنی مثل امروز خب, خب. دیگه با دیگه, و همینه دیگه. خسته شده. یعنی الان اگه به تو یه نقش خیلی خوب پیشنهاد بشه تو نمیای بازی کنی نمیدونم نه هدی خاصش شد حالا نقشش چی باشه متنش چی باشه متن چو کارگردان کی باشه نقش مقابلت کی باشه مهم. بله ببین فردا ما داریم میریم یه جای خوب منو شما و رزا و میام همین رضا میا. ببین من میگم اسمش میادی که حالم به امکنیمه جدی میگم جایی که اون باشه پامو نمیذارم حالا کجا میکنم خونه ی رضا رزا, رزا حبه رو با دو انگش بر و توی دهنش میذاره استکان چای رو یه ضرب سر میکشه سرش رو به دیوار تکیه میده در باز میکنه سلام شادمان سلام شما آجانس میخواستین؟ آقای زن زنه بودم آجانس میان خب حالا اومد ما آجانس آمده اید؟ بریم بزر تو توی جده یکی خوندم خودم هم میگید کنیم مقدر نیوزی آقای کلاس یا به قول مردی را روزو تقه پا میدن شده از زم با یه خنایی بود خشنگ با دو پرش با با برد خل بزاق تکونی بود گفتت عزیزم سلام و منم خواستگاوی نگاهی کرد قنابی بالا پایین روز دو سب پودخند زد به و پیشت که عذاب عذاب واسه چی زنید بتم مرد من نکردتم خلاقه دلید سکست ولی دیگه واهی هست برای سفر بیشتر بابو بندیلی شو باید دادی بود عمل کنن من قرد راوز شو دیگر دن بار می خرد کناوی این آرز شو دو بایی افکی کار رنگی مو تو از تو دیگر کلاو ازبیب افتو بدی میکنیت برنس داری با فکر زدن ملوشی آقای من و بوم ایک کل و بزنی کلا با حداث آقایت رو منش بتن زبا ببین رزا اگه دنیا نخود که با سارا ازدواج هم ولی حق تو باشه برات نوشته شده باشه دو دستی بهتو ولی حالا اگه حقت نباشه دنیا زحمت بکشی مهنت بکشی نمیشه که نمیشه دولت دولتان است که بیخونه دل آید به کنار منم فکر میکنم کاری که ما الان داریم میره بدیم از قبل نوشته شده یعنی جواب میدونه چی باشه نه ما که نمیدونیم اونی که نوشته میدونی به باغ می رسن از اینجا بهبر باید بیا ببین خیر می بعد ما با بین بهلو ها رو پاک کنین بیا شما نهماخواد وااست واسطه خویم صاد می خودی چند با بیبی حرف بزنه خاطی زن نه؟ منو آکوسی میکنم بعدش میکنم. خوبه از همین گوله و میت آقا رو بری میکنی خریدی منوش خوب منم دعا میکنم خیلی ممنون سهیلا امیرضا توی ماشین حرکت می کنه. امیر امیرضا از ماشین پیاده شده. دوربین توی دستشه. از کنار یه باغ با دیوار کاهگلی رد میشه. های انار از دیوار آویزون شده. قسمتی از دیوار باغ فرو ریخته. امیرضا از همونجا توی باغ سرکی میکشه. مقابل یه در چوبی قدیمی میسته عکس می گیره. به عکس که یرفته نگاه می‌کنه دوباره عکس می گیره. توی کوچه باغ یه در چوبی با دیوارای کاه گلی. شاخه های درخت از دیوار آویزونه. یه تابلو سمت راست دیوار نصب شده. خیاتی ونوس. رضا در رو باز میکنه. میاد بیرون. نراحته. به پشت سرش توی خیاطی نگاهی میندازه. رضا راه میره. سرش پایینه. به درختی میرسه. دستشو به درخت میگیره. حالا خودش به درخت تکیه میده. امیر رضا رضا رو میبینه. سلام رضا. سلام. چیکار کردی؟ چطور شد؟ ایک. ها؟ شو اینو کله نگی منی بیوی فقر بوشت نیست هیچی هم از من تعریف کرد دروب ما گفته که سیده کنم چه سالتیه چطور؟ هیچی همینجوری خیلی دفته پختیه میدونی از من بپرسی تو از خودش خیلی فرق میکنه ولی فکر کنم چه پنیسه سال باید معلومه باقیت واقعه از این برد بگیم ببینیم آنه میخواستم برد بگم ما قرار بود داریم هوتل بعد بریم دوفونیم خب حالا میگم هتل بعدم این فرودگاه ببین همه چه تغییر میکنه راه یعنی توما میبینید چه بود آره دیگه کاری نداریم میشه دیگه برد نمیگردیم شاید بگم گفتی، گفتی باب ساره این رو حالا ببینیم دوای این دوتا به کجا میرسه؟ دوای کنون دوتا تیگه کننده و کارگردان بچه ها بهشون نزدیک میشه <تصح> <باشه> <شونم> من بیگه نمیدونم اشکار کنم همش دو پلو حرف میزنه میگه من اگه مخالف بودم واسه اینه که باباش تو قبل نلرزه میدونی اینه میگه من مخالفم بعد میگم خب به امید خدا شما پس راضی هستین بعد سکوت میکنه از یه طرف میگه این پسر با اجازه کی از در اومده بعد از اوور میگه آخه خوب شد پسرم سیاهشو در آورد. میگه عروس معلول نمیخوام میگم خب این که رفته خودش یه سالمشو پیدا کرده برو ببین بیبی بی شاید پسندی هم تو زلزده به بهم نگاه میکنه من دیگه واقعا نمیدونم چگاه کنه خب آقا رزا ما بریم تلفن ما هم که داریم تن قلم به نقضیم اینشالا هرچی که صلاحه تو بشه صلاح من صلاحی و من خواب که آن کده خواب دلم هست که به همه این دنیا می رضا خیلی ناراحت. دستشو به دیوار میکشه و راه میره. آقا رضا بسپول به خدا. رضا به دیوار تکیه میده. سرشو به دیوار می‌چسبونه. رضا نتونسه حرف دلشو به سهیلا بزنه. اینکه امی رسو و سهیلا دور میشن. رزا که ایستاده بود در جهت مخالف اونا حرکت میکنه رضا نیسته اونا هم می به رضا نگاه میکنن رضا دستی تکول میده اونا میره رضا هنوز ایستاده به رفتنشون نگاه میکنه رضا گوشیشو از جیبش در میاره به تصویر نگاه میکنه عکس خودش و سارا اون دختر معلول که سمت چپ عکسه. با انگشتش تصویر رو به سمت چپ لمس میکنه. سمت راست رضا صهیلا ایستاده. چند لحظه ای به عکس نگاه میکنه. با چشماش دنبال صهیلا و امیر رضا میکرده. دیگه اونا رو نمی راه میافته. از کنار. دیوارای کاهگلی و یه درخت انار رد میشه. درخت به خاطر انارهای زیادی که ازش آویزونه خم شده. رضا آروم ما دور میشه. من خوبم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. فصل انار به شما تقدیم شد با تلاش و همکاری صدا خوبمون آقای علی حاجی نوروزی و به تهیه کنندگی آقای فرشاد آزرنیا. بنده هم ارادتمند شیما جان قربان هستم. چهار فصل زندگیتون سرشار از امید و آرامش. تا رادیو فیلم دیگه خداوند یار و همیشه همراهتان بدرود.